بسم الله الرحمن الرحیم گفتم که درست امروز ما فصل دوم کتاب جهانبینی اسلامی صفحه پینجا دلائل وجود خداوند جل جالهو 26 سور 1388 مطابق 2009 امروز بحث ما و شما سر ای است که بعضی کسایی که ماتریالیست هستن و خدا را نمیشناسن انکار میکنن از وجود خداون جل جلو. در این فصل ما شما میبینیم که از نگاه عقل از نگاه فطرت از نگاه قرآن از نگاه علم و نظریات علما می‌بینیم که درباره وجود خداوند مطال جل جلاله چه دلایل وجود داره به خاطر ازی که تمام علما در این قسمت کسایی که دانشمند استن اعتراف میکنن که خدای وجود داره سوال اول که مطرح میشه و است که انسان بصارت داره و بصیرت داره چرا بعضی از کسانی که با وجودی که ادعای علم هم میکنن چرا مسلمان نمیشن ما باید بفهمیم بعضی کسان میگه که خب انسان خداوند حس داده عقل داده در پالوی حس و عقل علم داده دانش داده فهم داده ولی با وجود ازی هم یک تعداد است علما و دانشمندان مسلمان میشن ولی یک تعداد زیاد دیگه هستن که تابال در جهان ایمان ندارن علتش چی است علت اساسی است که اول ما شما باید بصارت و بسیرت بشناسیم یکی بصرات است که منظورش حس باصری انسان است که دید چشم است. یکی بصیرت است که او نظر عقل و نظر قلب انسان است. این دو نظر با هم فرق دارن. انسان مؤمن از هر دوش استفاده میکنه. باب سارد و باب سیرد به طرف هر حقیقت میبینه خب اگر سوال شده که با وجهزی که شما چشم دارین ولی در یک دهش روان است که نصف شب است نه نور آفتاب است و نه هم روشنی از محتاب دمی تاریکی اگر دم پای شما یک پارچه یک سنگ طلا بیاییم یک توتی از طلا هست خشت طلا آیا شما این خشت طلا را با یک سنگ عادی فرق کرده میتانین؟ چشم داریم بنابراین با وجهزی که چشم داریم چشم ما نیاز داره به نور این نور نوری آفتاب باشه و یا هم کدام چراغ یا هر چیزی که باشه ایناله اگر من چشم دارم و در سحران میرم دم پای ما یک خشت تلا میرم من او رو کتلغت پای ما موگار میشم میگه موف و پای ما موگار کرد وقتی که نفر بعدی باد از من بیاید بر من میگه ازمی که خود تامدید تا قدام کسی در را یک خشت طلا را چون بیابان است یک پوچ یک سنگ بود و او طلا بود به من چراغ دستی بود اما را دیدم گرفتم اینا شدم من چرا چشم داشتم میره دیدن آنستم به خاطر ازی که با وجود ازی که ما قوه باصره داریم لکن قوه باصره ما در تاریکی ها کار نمیکنه نیازمند یک نور هستیم به این شکل که ما نیازمند نور هستیم در قوه باصره خود بینمی با شکل ما در بصیرت خود که قوه عقل است قوه قلب است نظر قلب است باز هم ما نیازی داریم و در اینجا نیاز داریم به چی؟ به نور ایمان اگر ما نظر عقل داشته باشیم ولی عقل ما از نور ایمان استفاده نکنه باز هم ما از عقل خود نتانستیم که استفاده درست بکنیم یکی بنا ان کسانی که با وجود که عقل دارن به حقیقتها نمیرسن چون اونا با وجود که عقل دارن از نور ایمان که وحی الهی هست با او به توجه هستند. اگر مطالعه بکنن بخوانند. حتما خدای عزیز و جل بر از اونا راه را نشان که ما و شما باست بسان به صلاح از او را میخانیم که زنها و مردهای بودن که غیر مسلمان بودن لیکن وقتی ایمان آوردن وقت خواستن که بفامن فامیدن خب دلیل دیگه که بسیاری کسا مسلمان نمیشن ای است که نمیخوان که مسلمان شوند، نخواستن که مسلمان شوند. شما ببینید در جیب ما، اتولو شده که ما ده هزار در جیب خود داشتیم، و از تمام مارکت ها تیر شدیم. از مقابل باقوش تیر شدیم اونجا تمام خیمه هاست و دکانه هاست که در اونجا میوه های مختلف داخلی و خارجی است. هر قسم میوه بخواییم شارنو رفتیم در دا داخل مارکت دیدم که میوه های بسیار خوبی بوده هر چیزی بوده که من میخواستم بگیرم با وجود که در جیب ما بود و اونجا هم میوه بود اما شب وقتی که سردسترخان ما هیم، سردسترخان ما هیچ میوه نبوده. چرا سردسترخان ما میوه نبود؟ بود؟ ما پیسه نداشتم؟ داشتم. آیا در شارد میوه نبود؟ بود. ولی چرا سردسترخان ما میوه نیست؟ نخواستم. نخواستم. بناهن وقتی که انسان همه چیز داشته باشه و نخواهه انسان غافل در قرآن چی میگه؟ نگه کسایی است که قلب دارن لا افقه هونه لهم لا افقه هونه به هم قلب دارن لکن درک ندارن چشم دارن لکن نمی بینن گوش دارن لکن نمی منظور منظورش است که او نمیتنشنید. نمی تنشونیده نمی که حقایقه بشنون به این خاطر به این مشکل مبتلا هست ما به سری اوقات در پالوی دریور سیستم در داخل موتر وقتی که در پولی دریور ششتم قرار روبرو سایل می طرف راست سایل می طرف چپ سایل می و دریوری در یاد ندارم یک ده در پولی دریور سیستم، لكن هیچ دریوری هنوزم یاد ندارم دو ماه ششتم هنوزم یاد نگرفتید ولی شما رفتین ده در پولی دریور یک هفته ششتم شما در یک هفته در مو جای که من ششتم بودم در دو ما. دریوری رو من یاد نگرفتم و شما در موچمکی که من شیشته بودم یک افتاش ششتن دریوری رو یاد گرفتین. چرا شما یاد گرفتین و من یاد نگرفتم؟ شما خواستین. خواستین سیل کردین از تان استفاده کردین از گوشتان استفاده کردین از اقلتان استفاده کردین و متوجه شدین که او ها اون دریور است اون اول اون یک چیزه کسته استاد نام از چیزی ازوتیسکی پچخش کردیم آگه او کلچ است خب اول اینو ماکم گرفتیم آو رو ماکم گرفتیم باز دیگه که هست دیگه آکش اکسلراتر است خب اینو چوتو کردید گفتید هم اما بعد ماکم دیگه بازاست تایره اضافه بدین باز اول از او اساسا کلچ و اضافه ها موتور حرکت میکنه اینا اولا من موتور حرکت دادم اما یکس دیگه هست که دو ماده پالی دریو ر 16 برش می کنه برادر تو دو ماده 6 میفهمی که مگه نه نه من چرا اون نفره که یک هفته شش زیاد گرفت و چرا این نفره که دو بود یاد نگرفت اون نفره که یک هفته شش تا بود خاص یاد بگیره و این نفره که دو ماه بود حس داشت چشم داشت گوش داشت استاد دریور ده پالو شش تا بود میتونه است که اصبیشو سوال بکنه ولی نخواست اناله به سری کسارا خداوند عقل دادن علم داده دانش داده زکات دادن لکن جهان بینی نداره وقتی که یک گوسفند طرف برق سائل میکنه چی فکر میکنه میگه اوه چی خوب برق های لوکس لوکس است ای کاش کمی گردن اگر دردشطور ورمی بود عمته دراز میکردم از منزل دومم کل برگا را میخوردم انسان های حیوان صفت همیشه با طرف هر چیز با حس شهوانی خود میگره اما وقتی که یک انسان که جهان داره دانش داره و از استفاده میکنه وقتی که طرف برق سیل میکنه میبینه که در برق چی عظمت خدای عزواجل نهفته است برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار پس حیوان جهان احساس است انسان با وجود از که جهان احساسی داره احساس میکنه لکن جهان بینی داره بینش داره که این بینش ازیره چی میگن بصیرت میگن بنائن مؤمن با نوری ایمان به طرف هر چیز نظر میکنن از قلب خود از چشم خود از گوش خود استفاده میکنن وقتی که هر مخلوقی رو در مقابل خود میبینه هر طرف دلایلش است به وجود خدای عزواجل وقتی من به طرف شما سعیل میکنم واا ایچی ذات است همگی چشمشان یک سان است همگی دینی شواندا پشوری است گوش‌های همگی یک دکتر اینی گوش‌هاش چیزاشو بریده بود وقتی که او نفر پر پرسان می‌کردن برایش خالد تو پشوری هستی میگی خالد او پشتار هستی می‌گفت آ ما ما فهمیدیم که اینم قسم که گوش خداون ساخته که هوا است که صدا چیه وقتی که از دور می‌گفتم بفهمم اون از او صدا شد حتی می‌فهمیم صدا از کدام طرف است از این طرف است از اون طرف است از, از این طرف است اگر از پشت سر بید تو گوش برام متوش ی قسمی مینه نه پشت سر اس اگر از روبرو باشد تو رو بیاره اگر این طرف باشه بنان ساختمان فیزیکی گوش هم وقتی که انسان درباره ازو فکر بکنه دلیل از ذات قوی هست که مرا خلق کرده و ذات مهربانست به شکل گوش مرا دهی قسمت وجود ما گذاشته است بنان هر چیز در وجود یک انسان چیاسه دلیل از با وجود خدای عزا و جل ولی ولی بسیاری کسایی که مسلمان نمیشن ایمان نمیرن علتش چی است، علتش چی است که او نخواسته که مسلمان شود. یک زن امریکاییست نامش از بیتی باومن بیتی باومن کتابی نوشتا کرد کت با زبان انگلیسی The sun is rising from the west این خورشید از غرب طلوع می کند شما ببینید چی خوبی اگه نام را اختیار کرده این خورشید از غرب طلوع می کند چی؟ چرا این کتاب نوشته کرد؟ کتاب را خاطر از این نوشته کرد که در کتابی که این نوشته کرد قبل از این کتاب نوشته کنند میگه من در حدود چندین سال تحقیق میکردم در باری از که خالق ای جهان کی هست کدام دین دین حق است؟ کدام دین دین راست است؟ و ما باید از کدام دین استفاده بکنم بلاخره خانم میگه که من چی کردم یک هزار کتاب مطالعه کردم یک هزار کتاب مطالعه کردم من کتاب های فلسفه را مطالعه کردم میگن که جوینده یابنده هست، جوینده یابنده هست. امی خواست دین حق بفامه، امی خواست رای حق بفامه، امی خواست که خدا را بشناسه. چون احساسش از او، چون عقل از او برش شم که بله. این دنیا خالق داره پس آیا این خالق دنیا کدام کتلاک فرستاده که ما از استفاده کرده برای موبایل من کتلاک است پس وقتی که من موبایل دارم او کسی که موبایل ساخته بر از این موبایل اسمه آه چی موبایل زیبای است لیکن وقتی که با عقل خود سل میکنم اتمنی ری اگه جور کرده ارتمانی یک نفر که در کامپیوتر بسیار واردت بودن پس آی اینسان مهربان بر یک کتلاک روان کردم، میگه آه بله یک اطلاق روان کردم ما اطلاق چه می خوانم برم، یک چی باد نامه‌ها داره چی داره چی داره چی دارن؟ پس وقتی که من دنیا رو مطالعه میکنم این دنیای بزرگ آیا این دنیا این انسان ها این مخلوقات این ای ای ای اجرام سماوی این نظام شمسی این به سیستم کامپیوتری از موبایل که لوکستر رو دقیق دقیق کار میکنه پس ای هم خالق داره که از ساخته خ... باشه ای برنامه‌ریزی زیادی کرده پس ما باید اینه که از کت موبایل خود معامله میکنم حداقل عقل ما بر من میگه چطور کت موبایل این قسمی معامله میکنی و کت ای جهانی که دقیق تر از موبایل است امرایزی عین معامله را نمیکنی بنان ای خانه میگرده که ای کسی که ای دنیا را خلق کرده او هم کتلکی داشته میگه او داشته پس او چی کرد هر کس میکنه اون دو هم دعوا میکنن کتاب من که اطلاق است که خدای عزوجل روان کرده اوکی okay. من ایرم مطالعه میکنم آی ویل ریڈ دات انسان امریکا میگه ماییرم خوانم کتابای ایندوئیسم فیلسوفا هم میگه که ما هم کتابای ما حق است ما هم راست میگیم مسیحی ها کریستیانا اونا هم میگن که بله کتاب ما که است این کتاب خداوند است و چیز جسوس کرایس مسیب سا خداست و خداستایی که کلام کلام خدا است. اونا هم داه کردن یه هم میگن که کتاب ما کتاب خداوند است. پس ما بیام ببینیم که که کدام کتاب کتاب خدای ازدو وجل است میگه من تمام کتاب ها را مطالعه کردم. یک هزار کتاب مطالعه کردم وقتی که یک هزار کتاب مطالع کردم هر کسی که میگه پی کتاب ما کتاب است که مربوط بدین است میگه این یک سوال ده سوال جواب میداد لكنکن پیج سوال دیگه به چی میموند؟ جواب میموند. بل اخر بل اخر بل اخر بل کسی خانمه بیچاره بود که باید در اول قرآن به دستش می رسید مطالعه میکرد ولی سرگردان و سرگردان میگه بل گم شده خدا یافتم قرآن از شانه که تمام سوال های مرا جواب گفت و انو سوالهایی که در ذهن ما خطور نکرده بود او را هم مطرح کرد و برای من جواب داد بل اخر میگه من فهمیدم تمام سوال هایی که داشتم که در ذهن و میگشت که مرا 40 سال رنج میداد بل اخر جواب کل سوال خدا یافتم وقتی که یافتم آمد کتاب خود را کرد در کتاب خود در کتاب خود ببینید صفحه پینجا و دوی کتاب بکشن که ما نظریات خانم بیتی با من هم یافتین میگه هر یک از این نظام های روحانی به بعضی از سوال های من جواب داد اما در ایوا سوال های را برای من به وجود آورد سرانجام آنچه را سال در پایان آن بودم یافتم چند سال در پای عوضو بود؟ چهل سال در پای حقیقت بود آنچه را سال در پای آن بودم یافتم راه برای معنا بخشیدن به هر چیز در دنیایم در دنیا دانستن شخصیت چون انسان ها برای هر انسان درس خوب برای می میباشد او در مورد خود چونین میگوید خانم بیتیپاو بی من چی میگه؟ مگه بسیار اهل مطالعه هستم زیاد دوست ندارم که مشغول چیزهای جزئی و سطحی از قبیل تماشا کردن تلویزیون رادیو فیلم و سینما و مجلات ورزش و سرگرمی و به طور کلی چیزهای مادی شوم میخواهم در زمینه زمینه‌های بعد معنوی زندگی مطالعه داشته باشم و سرگرم شوم و به افرادی که کم شانس تر از من هستند در این زمینه کمک کنم خانم بیت بی با من برای پذیر، پذیرش دین مقدس اسلام ظرفیت شخصی اینسان را میار اصلی قرار میداد. او میگه ظرفیت هر کس کپیسیتی بلدنگ هر کس ما باید ظرفیت سازی بکنیم ظرفیت سازی اسلامی کپیسیتی بلدنگ اسلامی ما ظرفیت خودا کپیسیتی خودا باید عالی ببریم در غیر ما قرآن را نمیشناسیم او میگه هر کس ظرفیتش فرق میکنه کسانی که ذهن دانشمندانه، قلب پاک و عاری از تکبر و خودخواهی و فکر دور از غفلت دارند می توانند به خوبی به اسلام گرایش خیش را اعلان کنند. سعی کن چی باید داشته باشی؟ قلب پاک و عاری از تکبر و خودخواهی. برن انسان های متکبر شیطان صفت هدایت نمیشن. قرآن در صفحه اول قرآن وقتی که میخانی در الفلام میم میخانی چی میگه؟ میگه زالیکل کتاب ای یک کتاب است کتاب چیست میگه؟ کتاب هدایت است هدن کتاب چیست؟ هدایت است اما برای کیست؟ میگه للمتقین متقی است که تکبر نداشته باشه خودخواهی نداشته باشه بنامین شرط اول یکی است که باید قلب پاک و آری از تکبر خودخواهی باید نداشته باشی بسیاری کسا در خانی مسلمان تولد میشن. درست از در خانی مسلمان تولد شدن. ولی چرا مسلمان ن... زم... کافر به خاطر ازی که مثل شیطان وارد چی کرد؟ تکبر عزازیل را. نام شیطان عزازیل بود. میگه تکبر عزازیل را خوار کرد. به زندان لعنت گرفتار کرد. پس اگر میخوایی که مؤمن حقی حقیقی باشی اول باید از تکبر دوری بکنی تکبر چی هست؟ مثلا بسیاری وقتا ریموت تلویزیون داده دسته تا سهل میکنی که عالم اسلامی صحبت بکن الاله بگیره و سو که رو گل که سیدی اسلامی سو گم بشکی سیدی اسلامی رو چی میکنی؟ فلانی عالم کف میزاره گم بشک و عالم کف زدنش خوشم نمه بنان ای وقتی که تکبر کرد خود خواهی کرد چرا که شیطان قلب شیطان وقتی که قلب سیاه گشتن چه قسم قلب سیاه مثلا گناه یک نقطه سیاه باز گناه میکنن دومی نقطه سیاه توبه کرد دلیت توبه, توبه کردی خوب قوی شفت دلیت اوکی اما وقتی که توبه نکردی نه توبه اگر توبه است کردی تنها دلیت لاکن در ریسا، ریسایکل بین افزست اما اگر توبه دقیق کردی این الحسنات یل سیات سیاد که گفتی که خدا یا موت توبه کردم نگفته که قرآن نگفته که ولا تزن و زنا جوان. جوانا گفته ولا تقرب زنا. و زنا به وسائل زنا نزدیک نشین تو وقتی که چپ تراش میکنی وقتی که میری که دختر نامهرم و که انسان نامحرم صحبت میکنی فلم های از اون رو 24 سا سائل کردن میری ها؟ و عادات ازد رو تقلید ازد رو کردی با عوض مسجد میری پشی فیلم شیستی. پس خودت با واسایل زنا خود با خود او برات میگه آه عاشقشو، آه پیار کارو، دوستی کارو، به حباد کارو. آه برات میگه. باعث میگه ولی ما تو کردیم تو با چنین جوری کردیم. تو با وقتی کسیان میکنه اول وقتی که تو میکنی باید سی دی های بیماری رو میده, میده میده کنی وسپرتی. جوانی که با تو کرده بود گفستان ما میخوایم تو بکنیم چی باید تو بکنیم؟ اول باید پشیمان باشی. آه درست است من استاد تو شمال هستم دوم از وسایل زنا دوری بکن استاد وسایل زنا چیست آه سیدی های این دیره که تو ماندی زنه که بلباس است این رو تو دیده میری تو توبه کرده میتونی مگه کردم ز شراب ناب توبه وز کرده ناسواب توبه در کشوره شاهر چی میگه میگه در کشوره هند اشرتنگیست کی کسی کند و خواب توبه در اونجا کس در خواب توبه نمی کند در لفظ شراب این ای میگه من که میخوایم توبه بکنم چی خواستم توبه بکنم در لفظ شراب گربوت آب با تشنلبیز آب توبه گفت وقتی که شراب است من زمین تو توبه کردم وقتی که من میفهم که خداوند گفته که به طرف زنهای نامحرم سهل نکنین بر زنای مسلمان میگه به طرف مردهای نامحرم سهل نکنین و قل المؤمنین یا قدوم نفساره هم و یحفظ و فروژه هم میگه به طرف نمحرم سل نکنین شهرگاه هایتانه حفظ بکنین و با دخترای مسلمان و قل المؤمناتی بر ها و دخترای مسلمان بگو که اینا هم باید های خدا به پوشان به طرف نامحرم سل نکنین بنار اولین وسیله زنا سیدی ها بود ایه رو باید بشکنین در وصف و چون شریک است صد بار زید شهد ناب توبه اگر درواز شیام از من توبه کرده بازو جش... چی میگه؟, میگه؟ دل توبه کنان و نفس گوید دل میگه توبه توبه نفس چی میگه؟ از توبه ناسواب توبه این توبه که ای ای تو زیاد کردی این توبه ای تو به درد نمی خورن. اگر توبه حقیقی میکنی که حتی از وسائل که تو را به گناه مبتلا میکنه از این باید دوری بکنی حتی از رفیقای بیدیر رو بیمان و شیطان صفتت باید دوری بکنی. بسیاری جوان ها را که به مبتلاب و مخدرات میساده چی میساده رفیقش میساده من شخصیت تر از چی درک میکنم در سرک دیدم که فلانی جوان میگرده و من او جوان بیتر بیر همه میفهم که والا در سجل تو هم یکان خط خط شده در غیر از او کند همجنس با جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز هیچ وقت ممکن نیست که کبوتر کته باز رفیق باشه. بگه تو دوست من هستی. نه نه نه کفتر بر زاغ مگه زاغ جان برو با خدا. زاغ که سیاه هست بر کفتر چی میگه؟ یک عالم چی میگه؟ میگه یک کفتر رفت در خیلی زاغ ها. کفتر سفید از ها سیاه سیاه. یک زاغ برای گفت که ای کبوتر زیبا. عقیده داشته باش. باور داشته باش. به همان صانه که ما ها در خیل شما کفترها ناخوشایندیم شما کبوتران نیز در خیل زاغها ها ناخوشایندید یعنی قسم که ما در کفترها خوش خوش نمیایم کفترها هم در خیل زاغها ها خوشش نمی در مجلس شیشتین ما در مجلس شیشته بودیم چند تا لندقرا گپ های می میزدند خای گپ میده دیگه کوله که باش ناخی ناخی خنده او که هر چیز میگفت یان تکو که خنده میکرد من قاهم تو شیش تا بودم سن عزیز سیرانم گفت گپ هیچ خنده نداره این فکای یزی هیچ خنده نداره خودی مردک که سال میک سولکو لگی کوله خنده میکرد میگن که من قاف پیشان تو شیش تیم اومد برام که فالا او وقت ما جوان بودم بس شما ور معسل بودم دیگه مار فالا شش ماست که از تو ما به تکلیف هستم چرا بیدارشان ما خیلی چیز نگفتیم نه آدم یکان فکایی میگه یکان قصه میکنه یکانش خندی میکنه ارتفاع که همی سهل میکنه کلگی زوفست اون تو قصه میکنه تو رو ششتی <تصحیح> او بیدار یا خنده کنی یا مجلس ما برای آه امو گفه امو دانشمند یادم آمد که مرکز. پس از این خاطر انسان باید در اختیار دوست خود این حاله انسانی که مسلمان, مسلمان میشه خانم بیتی با من چی میگم؟ قلب پاک داشته باشی و عاری از چی باشه؟ از تکبر خود خواهی و فکر دور از غفلت دارن فکرشان باید چی باشه؟ دور از غفلت چی مانه؟ یعنی بسیاری کسا چشم دارن غافل است بدترین گناه خرابترین گناه سرسخترین گناه گنا از شرک و کفر غفلت است شیطان انسانو چی میکنه؟ غافل میسازه چه خصم غافل میسازه؟ پیشتر برتان گفتم یک گناه میکنی؟ یک داغ سیاه شد شیطان میبرد میگه که آه بابا تو جوان استی؟ آله چی که یه برای تو نزید کردم میرن ناخ ناخ خودشان دیش صفیه دستن خودشان چطور است و و است آمده سر تو چیز میکنن رهی نزن خب که چی نماز نخوندی امروز صبح نخاندی چاشتم ها وقتی که نماز چاشت نخاندی دبل دارد دشتر خود سینگل داد بود آله باز که نخاندی باز چی برد مگه خب که ساعت تطیر که چی فقط تنها توی هستی کلو دنیا نمی خوانه دیگرش هم نخوان داد به طوان سه بلاخره به این شکل آهسته آهسته آهسته رشخندو کردی نماز نخواندی پولتا به جای مصرف کردی درس نخواندی ایسته ایسته بالاخره قلب سیاه میشه قلب کسیاسی شیطان میگه مالایکه را میگه برادر خودت دیدی که تمام روز قلبشون از سیاس پاک سفاسط را سیاه شده دیده. بانش تصرف من حالا وقتی که میان شیطان قلب میگیره میگه داوریش بده چی شد وقتی که قلب از داور داد نتیجه چی شد نتیجه ای شد که انسان هایی که قلبشان از شیطان سیاه گشتهند چیزهای خوب رش بعد معلوم میشه. چیزهای بد برش خوب باله میشه اگه که یک دو تارک ریش ماندی او القایده او سوفی، وی ملای شدی بگو بشت تشکر منیجر شیطان بگو منیجر شیطان مقرد شده بگو تشکر اوکی زنده باشی منیجر نیست بگو نیستی است. اگر میخوایی فهمی... می که بفاهمی که منیجر هستم خیلی سیدی های جهان بینی را بگی از انتشارات سای جمالی دین افغان باز میفهمی که تو کی هستی منیجر شیطان است اگر دید که دختر مسلمان چادر پیشیده وی گرمی نمیکنی خوارک؟ وی جوان هستی تو آرایش باید بکنی حال محصل شدی حال کامیاب شدی حال د انجینیری هستی حال باید وقتی ازش حال برایش بکنی تشکر منجره میگن نه؟ اما تو میگه نه نمیگن وقتی که نماز خوانه او بچش ده ای جوانی تو نماز شروع کردی گمش که وزو کن باز که ریشتفید شده این باز میخوانیم تو چی خبر داری که صفه میشی؟ یا نمیشی وقتی که در قبرستان بیری قبری ریشتفیده زیاده است از جوانا جوانا زیاده است تلفات جوانا زیاد میتن یا پیرا ها زیاد میتن یک تا پیر بمره کن اگه فلانی ریشتفیده که کش فلانی بچاره که کش اما اگه دو تا جوان کشتا شما میگه دو نفر سربازان امریکایی در قنده هار هلاک گردیدند اردش هلاک شد ان البته ترین مرض کی چی است غفلت است غافل چی معنا که شیطان انسان را غافل می‌سازد که تو گناه می‌کنی برد گناه را بی‌تفاوت می‌سازد در آمدی فکرت هم نیست گوشا که خاندار ماندگی است تو که رفیقت قسا داری بودی دا گند دا بنگ بنگ قدم میره و این ای ملائکه شک قدم میرن تو اسم تو نیستی. از اصحاب کرام شاگردای مکتب و نبوت چه آداد داشتن اونا میگفتن اگر ما به اندازی یک سر سوزن گناه کنیم به اندازی یک کو بر ما معلوم میشه میگفت ما به اندازی گناه سهل نمیکنیم به طرف ذاتی میبینیم که ما برای مخالفت کردیم معصیت کردیم با میگفت عادی شما وقتی که استاد براتن میگه بیشی تو میگنیم هستم بابا چه بیشی تو میگنیم ایستاد میباشم اگر چیز ساد بزن تو خب بزرگ نیست ولی که در مقابل از که تو بیدوی در مقابل استاد کردی گناه بسیار بزرگ است اینال یک معسل اوشیار و فامیده میفهمه که ولی که من بیشنم پاییم از سر پایم دور بوتم امیش ششتن رو در وطل خوب معلوم نمیشن ام پای خود رو زود رو کرد پایین میکنه و با آدم وارد از صرفش اینه میفهمه که نمیه هم یک نمی اما او کسی که ان اصحاب کرام یک گناه که بسیار کوچکه و بسیار بزرگ فکر میکردن گناه بسیار کوچکه بسیار بزرگ فکر میکردن بندازه یک سر سوزان که میبود بود نفتن که بندازه یک کوه هست اما منافق چی عادت داره؟ منافق میگه منافق عادت شی که یک گنای بسیار کلانه که بندازه کوه باشه او بندازه یک سر سوزان برش مالومه شد چی برا در نماز برادر؟ مسیدت نرفتی گویند خوردن شراب حرام است آن شی چیز که در این شهر حلال است کدام است ما شراب نخوریم ما که شوخی نکنیم ما آخرین خریستای خدا جور نکنیم. ما فلانی نکنیم فلانی نکنیم خدیگه چی بکنیم میگه تمام روزم یا بریم در مسجد بشیم کی گفته تو را گفته که نه درس بخوان با اخلاق درس بخوان. ماذدی تقسیم اوقات مشخص داره مطابق تقسیم اوقاتش بره دستنفه مطابق تقسیم اوقات به بینشکل اینا را کسانی که خداوند متعال جل جلاله او جل جلاله جل جل جل جل جل جل بر ازنا قلب روشن دادن اونا چی هستن خانم بیتی با من چمه که فکرش با چی باشه دور از غفلت قلبت از تکبر دور فکره دور از, چی؟ از غفلت میگه چی میکنن میتوانن به خوبی به اسلام خود را اعلان دارن زیرا اسلام دین است مطابق فطرت هر که فطرت سلیم داشته باشد علاقه اش با اسلام زودتر منسجم می‌گردد. تا وقتی که فطرت سالم داشته باشی فطرت سالم چی مانم؟ شما مثلا من هک رفتم لوگر رفتم سر دل لوگر در قریه داخل شده یک روز دیگر رفتم شیوکی در یک قریه قریه شیوکی مجرده که در قریه در لوگر داخل شدیم در شیوکی داخل شدیم دیدیم همه ار جوان که تیر میشن السلام علیکم مانده نباشین آه اینی مردم با فطرت سالم زندگی میکنه از ما مثلا محصولین ما چی عادت دارن وقتی که یک و که سرش درست داد بازو برازو ملای خدا قاط میکنه. السلام علیکم که ها؟ اما وقتی که دید که یک استاد دیگه هست سر درس نداره گفت. این سر ما درس نداره. چیال چی حال می‌خیدی برای سلام؟ اجرا رو برش لوناتی. این فطرت از چیزی شده؟ در جامعه زندگی کرده که فطرت تدیره چی کرد؟ خراب کرده بنا کسانی که فطرتشون سالم است پاک است. اونا زود به شناخت خدا و احکام خداوند پی میبرن اما کسی که فطرت سالم به خدا عقل پاک خداست دست سفید خدا سی دی پاک خدا هااردسک پاک خدا که خداوند برام پاک دارد بود میتونه چیزای خوب خوبه، کات کنه پیست کنه یه که کده بود گندگی ها را پیست کرده پیست کرده پیست کرده کل کامپیوترش اگه سایگل کنی 2000 عکس رقاصه است اصلش بنان وقتی در کامپیوتر هاردسکش دو هزاردان عکس رقاسه هست در یاردست که دیگه چند تاست او ایش به حساب هست بنا عنی فطرت سالم خود از این خاطر خانم بیتی با من میگه که هایی که فطرت سالم انسانی دارن یا زود به وحدانیت خداوند و به وجود خداوند زودتر پی میبرن اما هایی که از فطرت برآمدن، و تمام رو زقم چی هستن والا میگم در کتاب هدوی خانم که یک زن طفل خدا تفل. یک سال است یا دو صالح خدا کشتم چوری رکشتم میگم والله من میخواستم که شهرت پیدا کنم شهرت پیدا کنم شهرت پیدا کنم رفتم رخص کردم در رخصم کس مشهور نشدم رفتم در فلم هم کار کردم گفت چندان کار کردن نمیذارم مشهور نشدم گفتم والله من میخوام شهرت داشته باشم خای چی کنم رفتم طفل خدا کشتم عکسام در مجلات چاپ شده اینم شهرت پیدا کردم فطرت ضعیف است آگه نمی مشهورت داشته باشیم یا نداشته باشم، شهرت داشتی یا نداشتی این طرف بلگر روز ز قضا مگر سکندر می رفت و هم از سپاه با او آن حشمت و ملک و جاه با او سلطان سکندر است؟ می رو او؟ به ملک و جاه س... کل کلوی... کابینش روان است ناگه ز خرابه گذر کرد پیر ز خرابه سر در کرد دم موقعی خرابه اگه که هکه دیشتفید پیر قرار شیشتن پیر ناحو آفتاب پر نور آدم ریش سفید اسو لكن چهره مثل افتاب وره نورانی است. در چشم سکندر آمد از دور اسپران بدن مغاک چون گور از وقات طرف از اون بر دیت که قوری اونجا یک کس دموجا دمو خانه های خراب یک مثل گورستان وارست. پیر دید که ویژه سلطان سکندر از قرا ده جای خود شسته اسپران بدن مغاک چون گور پیر از سر شغل خود نشود دور ناگه سکندرش بسط خشم سکندر دیگه کار است و حسابش خراب است برش میگه که بهری چی نکردی احترامم چرا به احترام ما استاد نشدی آخر نه سکندر است نامم دانی که منم به وقت فیروز سلطان اسکندر دیگه از این نفر میگن دانی که منم به وقت فیروز عالم بخت ما وردیم. فرق همه عالم هستم امروز امروز کل مردم پایای زمین هستم سر فرق همه مردم هستم دانی که منم به بخت فیروز فرق همه عالم هستم امروز دریا دل و آفتاب رایم دلم مثل دریا دریاورز فکرم مثل آفتاب باور فرق فلک از به زیر پایم اتوی سیاره ها کل زیر پایم است سر کن پیر اثر شغل بون بر زد پیر خیلی است شد گفت این همه نیم جو نير زد امی پاچایی تو امی حکومت تو امی کابینه تو امی کلش نیم جو نیرزد پیر از سر شاغل بانگ برزد گفت این همه نیم جو نیرزد نفر و نروی آلمی تو فرق و نروی آلمی هستی. نروی یک دانه زکشت آدمی تو تو یک آدم است یک انسان است در بین میلیارد ها نیفرق و نروی آلمی تو یک دانه زکشت آدمی تو دو بنده ای من سر که بر چی میگم؟ دو چیز که بنده من هست دو بنده ای من که حرس و آزن یکی حرس بودن هست و یکی آز که غرور و تکبر و خودخواهی ها هست این مردو چی ساخته بنده خود ساختیم. دو بنده ای من که حرس و آزن بر تو همه آمور سرفر آزن امشه این دو بنده ای من سر تو چی میکنن؟ پادچایی میکنن هرسان سر تو پاچه ای میکنن و آز خواهشات نفسانی هم با من چی برابری کنی تو با من چی برابری کنی تو چون بنده بنده منی تو اینال انسان مغرور انسان متکبر فکر میکنه ما آزاد هستم آزاد نیست چی هست غلام خواهشات خود هست. بنده نفس اما را به سوی خود هست. یه خودش فکر میکنه که ما آزادم، لکن آزاد نیست. خب انال خانم بیوتی فام با من چی گفت؟ گفت هر که فطرت سلیم داشته باشد، علاقه اش با اسلام زودتر منسجم می گردد. او در این زمینه میگوید صالح گپای خودش است آنهای که قلب و ذهن مستعد دارند زود به حقیقت میرسند. در حالی که آنهایی که قلبشان به خاطر غرور و ذهنشان به علت غفلت و توجهی مقدر شده است به سختی به حقیقت میرسد. انال خانم بیتی با من اینجا چی گفت گفت وقتی که ما اناله بیم یک نقطه‌ای که اینجا پیدا میکنیم که بزرگترین تقوا تقوای فکر است بزرگترین تقوا کدام تقوی است؟ تقوای فکر است که انسان فکرش وقایه شده باشه خود تقوایه چی گرفته شده از وقایع گرفته شده اینحاله بزرگترین تقوا تقوای فکر است چی از تقوای فکر است مانایشیه است که انسان فکر خدا از گندگی های فکری وقایه کرده باشه یک نفر است پیش از که اسلام ها مطالعه بکنه، این فکر خوده با کتاب های کمونیستی گنده ساخته. فکر خوده با کتاب های کمونیستی گنده ساخته. اینالی ای کمونیست که هر قدر برش بگوی بگوی بگوی اول مجبور. سعی مثالش چه قسم است؟ یک نفر از فکر خودا با افکار کمونیستی گنده ساختن بعضیز با افکار کفری گنده ساختن بعضیز با افکاری که مثلا هر کسی که نوشته کرده به چیزهای نشت کرده زین خودا خراب ساختن اینال مثال از عزی... اما یک نفر دیگه است که فکر از این رو ببینید اما تو پاک صفا گنده نیست پاک صفا است شما مثلا انجنیری میخواین درست است نه؟ یک شما به این هم یک نفر زمین گرفت و ما هم خواستم که اردوی ما گفتیم که خانه می جور بکنیم اینه پول صارم که می برادر عزیز زمین گرفت بگه اول یک 420 زمین گرفتم چطور کردی کاره میگه والا صاحب رفتم یکی خودم تون انجینریده خواندم و رو جور کرده با اسکیچ مسکیچ و نقشه نقشه و گپاشه کلش جور کردم و مواد گپارم خریدیم این در منزل اول رسیدیم منزل اولام بخیر پوشش تمام است نزدیک به تمام است او میگه تو چی کردی من بگه والا صاحب ما رفتیم یک اولی کونه خریدیم فعلا دیگه تمام روز روز 20 تموز دور کارا پاک پاکادا میرمم پاک میرمم این پا ای دیوالو چپا کورو چپا کورو چپا کور ما هنوز چپا کردن و پاکاری هستم و خانی ازی وقت در منزل چهارم رسید کارش تکمیل شد پس اینا کسایی که تقوای فکری نداره، فکرش چی شده؟ گنده شده. الال وقتی که تو کدی انسانه که فکرش گنده است کار میکنی مجبور دیگه یک کلچه صابون بگیره و فکر از رو باش پاکو پاکو پاکو پوکو با خاطر که آخر میشین. برای هر هرقدر گفتم میری، این فکرش گنده است. تو هرقدر گف خوب به میگی، این چی میکنه؟ او اون طرف داو نمیدند. تو بهش میگی برادر اخلاق خوب چیز است روی خوب چیز است امرای یک مسلمان باید روی خوب داشته باشه. بر تو برش چبلیغ میکنی چون او منفی بافاس فکرش گند است برش میکن خیمت اگه خراب بادم از تم که اگه کتمردم روش بد میکنم در گوش من میزنی آخ دایه لخمت اکو بر کل این تو کجا فکر از برش میکو کو تو نماز میخوانی لکن شیطانی نکو گپ از نفر رو به اون نفر در بین دو نفر دشمنی نفر تو تنهاق نماز رو نجات نمیده، در پالویزی که نماز میخانی کوشش بکن که در بین دو نفر چغولی هم نکنی این وقتی که گندس فکرش اگر یک آدم چهت مگه اوالا بسیار خوب است کوشش بکن آدم میمی بکنه اما وقتی که دیگه شایی میرم مگه خب مقصدت ما بودم دیگه یعنی که من استم. اینال بزرگترین تقوی, تقوی چی است؟ تقوی فکری هست که انسان فکر خوده از سخنها و از نظریات و اندشه های باطل دور داشته باشد باز او مثل یک زمین صفی دوار است که وقتی حق قطعه برش گفته شد زود قبول میکنه. ماسلین موشرو ما در سی یاد نمیگیرن علت اساسی شون در چی است علت این است که صهبکی که میخواد تا شام این خواندن بشنه و گپ بزنه و فکایی بگه همین سیدیگیه که مغز کسی پر از خواندن است و از گپ است و از بهش خندیس و از مزاق است وقتی که خفتهن کی میشه کتاب اخر میخوان کاپ میکنه اینکه پیس میکنه فالیش میگه نه, نه نه پر شده بازیت رای میکنه باز میگه نه نه نه ضرورت بر ریترایت نیست نمیشه فال فال تو چی شده وقتی که انسان مسلمان میخواد حق بفامه باید چی داشته باشن؟ تقوای فکری داشته باشه مثال براتان میده من زیادتر مثال به از این میگم که مثال گپ از این انسان بسیار خوب میشانه باز کمی کتاب یک دفعه خاندی در زینت میشین اگر مثالشو نفامیدی باز, باز درست درست نیفامید شما ببینین در, ی... در یسرب قبل از این که بنام مدینه منوره شدم یسرب میگفتنشه درست هستنی؟ در یسرب یک دیداد علماء آمدن علماء بنی اسرائیل ریش های کتکته چپان های کتاکتا، کتا، کتا شکم های یا که اول آمدن مردم یسرب که هست مردم مکه که مردم هجاز این منطقه رو بنامه هجاز میفتن مردم هایستن که زیادتر اغلبشان کتاب مطاب ندارن و بیسواد هستن و ناخان هستن این قسم مردم هستن یا که آمدن مهاجر آمدن یهودا از منطقای دیگه هجرت کردن آمدن در این حجاز مردم آمد گفت که شما اینجا چی میکنین که آمدین؟ در منطقیتان جنگ بود؟ میکنی جنگ نبود خیلی چون اینجا چی مشکل بود؟ گفت ما مشکل نبود ما آمدیم خاطر ازی که ما علما هستیم اهل کتاب هستیم در کتاب ما نوشته است که آخرین پیغمبران که به نام محمد هست ستوده شده در کجا پیدا میشه در حجاز به ما آمدیم که اینجا ای پیغمبر رو ببینیم و با ای پیغمبر ایمان بیاریم این مردم گفتن خب شما اهل کتاب هستن؟ شما عالم هستین امی قسم است، مردم یستر کل گفت های و یا ار روز تبلیغ میکدن که او مردم آخری پیغمبر ها در این منطقه هم برایه. وقتی که آخری پیغمبرا ها بر آمد و این در ما نوشته شده و دیگه پیغمبر ها که بود در گرد امی بحر مدیترانه بهیری بیترانه در اطراف ازی زیاتر پیغمبر ها در چار اطراف ازی بر آمدهد این بهیری مدیترانه بسیاری مناطق آسیا را هم در بر میگیره و مناطق اروپا را هم در اطراف از هست کشورهای اروپایی و آسیایی و اتا بالاخره تای قسمت آسیایی و تای قسمت هم هست افریقایی در اطراف از این بحیره این چیزا ای پیغمبر ها غالبند برامد چون این بحیری مدیترانه باز متصل هست با همراه بحر سرخ و باز با همراه محیط اطلسی با کل از ای ها محیط مردم هر روز تبلیغ های از ریشای کلان کلان چپن های ککا ککا علما و دیگر هم کلشان دعوت میکنن، او مردم آخرین پیغمبر برا او مردم میگه پس بلاخره مردم یسرپ کلشان آماده حسن بچی با آمدن که پیغمبر جدید تبلیغ براشد گفته شد این دیگر رو سیب وقتی که با مکه میرن، برای تجارت میرن، مرکز تجارت جهانی وقت در کجا بود؟ در مکه بود. میرسن مرکز تجارت جهانی در بازار. اینجا که در بازار میرن که یک کسی میعه برشان میعه که ایوه الناس ای مردم قولو لا اله الا الله تفلحوا. روزی که پیغمبر خدا تولد میشه یک یهودی یه صدا میکنه که او مردم آگاه باشین که ستاره آخری پیغمبر ها برامد. آخری پیغمبر ها ظهور میکنه. ظهور کرد. علاماتی که در کتابه نوشته بود موقعیت جغرافیایی که در اون منطقه نوشته بود چهره و ساختمان فیزیکی پیغمبر که در اونجا نوشته بود اونا کل چیزا رو میفهمن چون عالم بودن و کتاب خوانده بودن اهل کتاب بودن خب اینجا سوال پیدا میشه که پیغمبر وقتی که آمد موقف از اینا چی بود دو موقف شد مردم یثرب که بت بودن که جاهل بودن که به خاطر دو اسب چهل سال مبارزه میکردن این مردم وقتی که شنیدن که پیغمبر بر در مکه وقتی که گپایش گوش گرفتن که به وحدانیت خدا دعوت میکنن که به کل پیغمبر ایمان داره، که کتاب آمده به نام قرآن که آیات قرآنی رو تشریح میکنن این آمدن در بایه اقابت ما شما خواندیم که نه بایه عقبه اولی و دومی و ترا چند مرد و چند زن و گپا شما در تاریخ خواندن. آمدن با پیغمبر خدا بیعت کردن و گفتن ای پیغمبر خدا ما ایمان آوردیم لا اله الا الله محمد رسول الله ما مسلمان شدیم ای پیغمبر خدا اگر ای قوم تو در مقابل تو خیستن چون دونی اسلام مردم به قوم پرستی دعوت نمیکنه قوم پرست مسلمان نمیتونن باشن قوم پرست زبان پرست مسلمان بودن نمیتونه از این خاطر پیغمبر خیست مردم به عبادت رب العالمین که خدای همه هست دعوت کرد قوم پرستی نکرد قوم خود پیغمبر خیستن پیغمبر از خانش کشیدن خی مردم مکه ای از خانش کشیدن از قوم, قوم خودش بخاطر اکه پیغمبر قوم پرستی نمی کرد خدا پرست بود خی مردم یسرب چرا مسلمان شدن؟ چون مردم یسرب ذهنن آماده بودند نه کیم اونا رو ذهنان آماده کرده بود؟ برشان گفته بود؟ علمای کی؟ علمای یهود، اهل کتاب اما علمای یهود چی مشکل داشتن؟ یهودا چی مشکل داشتن؟ مشکل ای بود که یهودا قوم پرست بدن یا از دیگه منطقه آمدن در مدینه منواره چی بود که والاسه ما اینجا آمدیم به خاطر ازی آمدیم که امی پیغمبر اخو گفته که در حجاز می امی چه که زندگی کنیم از قوم ما می برایند. در دلشون ای بود که پیغمبر یعنی از این منطقه ما این آمدیم اینجا خیمای خود از زدیم کوچموچ خود اینجا آوردیم ماجر شدیم آل دیگه مردم هم دعوت کردم میریم مردم ایمان میرن و این پیغمبر هم که از پیغمبر است که از قوم ماست از بنی اسرائیل است. بنامه وقتی که از قوم ما برآمد دیگرها کل از اینا باز تابع ما میشه ما باز سر کل از اینا پادشایی میکنیم و حاکمیت میکنیم هدف از اینا چی بود؟ دین نبود هدف از اینا رشد قومی و هدف از اینا پادشایی کردن و غلام ساختن ملت ها بود اینال چی شد؟ علم اگر در دل زند یار شود علم اگر در سر زند مار شود علم در سرشان دستر بود اون مردم بی و ناخان و بی خبر چی شدن؟ مسلمان شدن کلمه خواندن. اصحاب پیغمبر شدن انصار شدن پیغمبر خدا رو چی بیکردن؟ استقبال کردن استقبال کردن پیغمبر آبادن بد علینا من سنیات الوداع وجبه شکر رو علینا ما الله دا، آیهالما بعث فینا جئت به الامر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا یا خیر دا؟ ای نامی خواهدان که طلا آلبدرو پیغمبر میه یا برش میان که طلا آلبدرو علینا اونه محتاب آمد، من سنیات الوادا سنیات ات دندانهای را مگه اوجکوز برام بدادم مگه اون انتقی وادام مگه اون پیغمبر خدا مت طلا آلبدرو پیغمبره تشمی میکنن با چی؟ با محتاب طرحبد البدر علنا من صنیات الوضع وجب الشكر شکر علنا واجب شد شکر بالای ما ماده حال الله ادا یکی <تصفح> دعوت کرد مردم دعوت کرد به سوی الله جلله جلو. احل مبوف فینا بر پیغم بر میگن که ا کسی که تو مبسی دیبی به طرف ما آمدی؟ المبعوث المبع... فینا جئت بالامر المطاع مجاء ودي با یک اوامری که باید اطاعت شود جئت شرفت المدینه ای پیغمبر خدا تو آمدی مدینه را چی ساختی مشرف ساختی شرافت دادیش مرحبا یا خیردا مرحبا خوش آمدی ای بهترین دعوتگرا اینی مردمایی که بیسواد بودن بی خبر بودن جاهل بودن یا چی شدن مسلمان شدن برعکس از او علمای که خوب چپنهای کلان کلان داشتند، علمای که خوب ریشای کلان کلان داشتند، علمای که مردم دعوت میکردن به ای که شما با آخرین پیغمبر را ایمان بیارین یا متوجه شدند که این پیغمبر از قوم ما نیست وقتی که دیده که از قوم ما نیست وقتی که مردمهای مکه آمدن پیش از ریسای کنن امو عالمی که دعوت میکرد به اسلام وقتی که مردم اومدن گفتن والا تو ببین که این پیغمبر ی محمد میگه ما پیغمبر خدا هستیم قریشی اومدن پیشیکی پیش, پیش های یهود پیش یهودیا که شما عالم هستین با خبر هستین میفامین رأی ما خوب است که ما بت هستیم و یا رأی محمد صلی الله علیه و سلم که او به وحدانیت خداوند دعوت میکرد اینمی یهودی قوم پرست بر پرست ها گفتن که نه نه نه رأی شما درست است باید شما چی هست؟ درست است. این حال قوم پرستا چی میکنن کنن؟ چون به ویروس فکری مبتلا هست فکرش HIV داره سهیست نید؟ یکی HIV بدنیست یکی HIV فکریست این فکر ازی ای گنده شده این حال این کسی که فکرش گنده شده فکر از این خراب است. خود از این بدبخت است این حال این بدبخت راه حلش چی هست این به غیر از ای که کافر بمره از این خاطر اونو مردمای جاهل و بخبر یصرب مسلمان شدن متمدن شدن مدینه، یسرب و مدینه منوره نامش نامگذاری کردن مدینه تا رسول پیغمبر استقبال کردن تمدن در کل دنیا نشر کردن و گستاولوبون فرانسوی میهه که میگه که رومانی ها در عشق قرن نتانستن اوتو تمدونی بسازن که حضرت محمد سلام پیروانش در عشتات سال در شرق غرق یک بسیار بزرگی رو ایجاد کردند. این بهترین تقوی کدام تقوی شد تقوای فکری که انسان باید فکر خوده از قوم پرستی ها و گندگی ها دور بسازی امیالا ما میگه پس نیست بزرگترین عالم ها و بزرگترین ها و بسیار خدا عالم میگیره و دانشمند میگیره و فامیده میگیره و لایق میگیره خوب معسل پوهندتون همه از بخاطر دانشگاه و ایمان ایمان خدا ضرب سفر میکنه میکنه نمیکنه؟ چرا؟ بخاطر ازی که خدای عزواجل میگه که این اکرامکم عند الله بهترین شما پر کی است با تقواست در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت علی قوم پیغمبر است با تقوا بود گفت تو شرف داری بلال حبشی بود گفت تقوی داشت گفت تو شرف داری سلمان فارسی بود گفت تقوا داری تقوا داشت گفت با... با کرامت هستی صاحب رومی بود با تقوا بود گفت تو شرف داری بیبی سمیه زن بود با تقوا بود گفت تو شرف داری نگفت که مربوطی کل اونگیر پیغمبر صلی الله علیه و که کل تان مثل های شانه هستن هیچ کس پیش خداوند فرق نداره اما کاکای پیغمبر که ابواللهاب بود قریشی هاشمی عربی سفید پوست بود بر او قرآن عظیم شان گفت که سایه اسلا نارن با اینمی که داریم در دا دوزخ داخل بشی چون در قرآن میگه ان اکرمکم عند آمد. ات قاکم با تقواهی اما قوم پرست هاییر نمیگه و بهشان قوم پرست میگه پشتون رو کم تاجیک قوم پرست میگه تاجیک رو کم ازاری قوم پرست میگه هزارت رو کم ازبق قوم پرست میگه ازبق رو کم قضل باشه قوم پرست میگه نورستانیو کم میگه نه میگه پس اینا با گف خدا که ات مخالفت دارن نداره ایناله کسی که ضد آیات قرآن گف بزنه و میتونه با ایمان از این دنیا بره اونم و عالمای یهود داره شاید عالم باشه اما علم اگر در دل زنت یاره شود علم اگر در دل تو طرف میگه تقوا پیدا کو چی قسم تقوا بگم میگه چهریت مثل چهری رسول خدا بساز رسول خدا ریشش کلا نبود چهریت مثل کی رسول خدا بساز رسول خدا ریشش کل بود نیه. امام حسین ریشش کل بود نیه. عزت علی ریشش کل بود پس ما چطور منعیسی یک عالم میخیزیم بر مردم همیم که ریشایتان را کل کنیم پتراش کنیم شما باز مسلمان خوب هستید بخاطر خاطر که چهار نفر بادارای ما چون ما اصلا آزاد نیستیم مگه ما مسلمان هستم آزاد نیست یکم کم دنبش رجای دیگه بند است. از این خاطر او کسی که دمبش بهش از او بند است او میگه میگه که تو باید ریشت کل باشه به خاطر که او را خوش بسازه میاد اینجا سنت پیغمبر همان میشه من با تقوی من با ایمان هستم نی برادر وقتی که با تقوی هستی سیست من ریش خدا کل کردم ما من گناگار هست ماله زورم نمیرسه سر من نظام اجواریست مثلا در ترکیه نظام است، نظام سیکول نواسای اتا ترک ملحد است اتا اتاترک که آتی ترک را میگفتند، در اقوره ترک های مسلمان رو آتی خودم قبول ندارند. جنرالا ها ازو از او خینزی راست خینزی رو که خلافت اسلامی را رد کرد نظام اسلامی را رد کرد امروز نواسا و کواسای از او در سر قدرت از در قوات های پیش از مسلمانان مسلمان ها را اجازه نمیتن که ریش خدا مسلمان با چادر داخله شد کل دخت المانای خونه است که اگر در دنیای اسرار مادی که دخترای سیکولره که تحت تاثیر نظام سیکولاری باشه جراو بپوشن و کولرج باشه ما بخزیم به کوان عللا در دنیای اسرار زنا قلهشون لچ از دیگه در دنیای اسرار خوب خوب دینداراش ماکسی پوشیدن مولویش مبلویش ریچایش چپاتراش است خیمام دیگه باید از این ملاها ریشار تلاش کنه و خانمام دیگه می نجوب بپشه اینه ولی اصلا است. چرا؟ بخاطر از این ما ایمان خود از کجا میگیریم؟ آیا ما ایمان خود از قرآن و سنت بگیریم و یا از های دنیای اصرار از قرآن و سنت بگیریم و در قرآن و در سنت و در او وقت بر شما دلایلش کلش گفتم که در قرآن و در سنت چیزی به نام ریشکلی وجود نداره هر کسی که گف هم میزنه ضد قرآن گف میزنه و ضد حدیث پیغمبر گف میزنه و شاگرد هم که ازو دفاع میکنه او هم باوام که شاگردی شیطان میکنه اگر کسی کدام دلیل داره يلا میربانی کو اینجا بر ما بگو که در اینی آیت قرآن گفته که اینی کار بکن اگر کس نمیمونه بگو که کار است گناهکار هستم من مجبور هستم من فلانی منطقه این اما باز برازو برات نتن زده گپ خدا و زده گپ پیغمبر گپ نزنه برای مردم دوگاه تبلیغ نکنن یک جوانه که میخوای ریش باشه رو نگه که توریش رو تکل کن بخاطر ازی که بخاطر ازی که پیغمبر خدا را بزرگترین آیت و قرآن که چیز کدن سعی کنین بیشری کسایی که من خدا رو دوز دارم دوستی خدا چی خصم بدست انسان میه قل انکنتم الله ای عزت محمد صلی بگو مردم انکنتم اگر شما تحبون الله، الله الله دوست دارین فتبیعونی از من چی بکنم؟ از من پیره می بکنم از رسول خدا اینال باز یحبب کم الله باز الله شما را دوست می داشته باشه سعی کنین فرمول فرمول اسلامی فرمول محبت ما الله را دوز دارم و می خواهم که الله جل جلاله مرا دوز داشته باشه. ما خدا را دوز دارم. می خواهم که خدای عزوجل مرا دوز داشته باشه. من چی بکنم؟ قرآن بر ما میگه که این دو فرمول در یک گپ حل میشه. اگر الله را دوز داری، مطابعت رسول خدا رو بکن. و اگر مطابعت رسول خدا رو کردی، باز کیشو تو دوز نداشته باشه؟ یو حببكم الله الله شما را دوست می داشته باشه ما بخیزیم یعنی ما خدا را دوست داریم لاکن مخالف سنت رسول الله عمل میکنیم باز اینجا که خب محبت پیدا نمیشه محبت پیدا نمیشه محبت محبت خدا که تو خدا دوست داشته باش من ثابت کنم که ما خدا را دوست دارم چی باید بکنم از چون کلمه بر ما میگه که لا اله الا الله الله را که دوست داری از کدام را برو به دوستی الله از محمد رسول الله خدا هم عریفی که در کلمت محمد رسول الله باز در, در عملت باز میگینی سریال های دنیا اصرار بر زبانت همدگویا در دلت پیداسنم بر زبانت همدگویا در دلت پیداسنم عیبه با کافر و ظاهر مسلمانی چی سود بر زبانت هم میگی یگن که ددس تسبیح است سبحان الله سبحان الله سبحان الله که تو دیگه غیبت کرده میره من انداخته میره بر زبانت همگویا در دل چی هستا پیدا سراب چشما چشمک چرانی میکنه ها سبحان الله سبحان الله به مدو... طرف الله. شاعر دیده سعدی دیدنه دید که یک نفر است سعدی دید که یک نفر تسبیح انداخته میره لکن سونو زنای نامحرم سایه میکنه گفت بر زبانت همگویا در دلت لرکی پسند عیبه باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود که در ظاهر عبا و قبا داری اما در دلت با خداوند محبت نداری از این خاطر انسان باید دین مقدس اسلام از خلال چی بفهمه؟ از خلال گفای خداوند بناهن بر پذیرش حق چیسته؟ ما پذیرش حق باید انسان تقوای فکری داشته باشند و ما اقسام دلایل وجود خداوند متعال جل جلو را که در صفحه 55 است ان شاء الله تعالی در هفته آینده بخیر میخوایم.